فیلم بید مجنون نویسندگان مجید مجیدی سید ناصر حاشمزاده فعاد نهاس بازیگران پرویز پرستویی همون که تماشای های دنیا از اون طریق کردی، رویا موریان امروز دوباره از دانشگاه تماس گرفتند. می بدونن بالاخره برای ترم جدید میری؟ آفرین اوبیسی. یوسف تو با زندگی چی کار کردی؟ رضا ناجی من هر روز میرم اونجا. اگه دوست داشته باشی میتونیم تونیم با هم بریم. محمود بهروز نیا. خیلی خوشحالم کردی امری حالا بریم بار کارگاه مشرب بدن. لیلا اوتادی مریم جون به من نگاه کن احمد جواهری خواهش میکرم داییتون آقا محمود از دوستای قدیمی منه اون به گردن من خیلی حد داره ملیکا اسلافی بابا یک آر کن که بردا کار نداشته باشی بابا تو را باشه, باشه آهنگساز احمد پجمان کارگردان مجید مجیدی تهیه کننده سازمان سینمایی سوره و مجید مجیدی در نمای تاریک صدای یوسف رو میشنم تو بگو تا کی میتونم پنهان نام کنم به کسی چیزی نگه یه روز یه هفته یه ما نمیدونم نگران خودم باشم یا نگران اونا بابا. اگه بفهمد چه حالی میشن میتونم تحمل کنم یا نه خیلی خوبه بنداز من حاضرم خودک دو چوب رو در آب رودفانه رها میکنید پدر و فرزند شاهد حرکت چوب ها در آب هن. یکی از چوب وسط جوی به سنگی گیر می کنه. یوسف به آرامی چوبه کوچکتر رو از آب می گیره نه من چی؟ تو با گیر کردی؟ نکنه تقلب کردی؟ به خدا دروق نمی گرد نرحب شدی؟ من بابا جونو پتران؟ خب مسابقه است چرا گریه کردی گریه کنیم فقط یکم چشام سوزه؟ خب بهتره ببین. هر دو بلند شده بین درختان راه میفتن. بابا فردا میریم تو نمیدونم شاید دارم. می خوددغللت نداده بودی که جمعه با مامان ما رو میریم پول خب آره ولی شاید فردا کار داشته باشم بابا. اون گیر کرده، باشی تا قنادر دست بهش صدای یوسف رو گوش می‌کنه و صحبت‌هاشو با ماشین تایپ مخصوص خط بریل. اما جای تعجب که چطور مولوی با اون تربیت و تیزیوشی و خوشبیانیش این همه سرمایه خودش رو در اختیار شمس گذاشته گفت اون آتش بزن. مگه شمس درقبال اون چه بعدی داده بود؟ مولوی شدن مولوی در همین خمار عاشقانه است و همین گذشته بی‌توقع. یوسه؟ بله دستای مریم هم بشون داریم همین کاره میکنیم با یا این قطرچه شما کجاست اینجا رو میزه بعد گیری چشن شما میسوزه بیا برایت بریزم چایی هم آماده است مشکای جنوالی رو هم نه اون وقت میگم فرشته ها فقط تو آسمونا زندگی میگون خودتو <تصفيق> لوس نکن خودتو لوس نکن رویا در حیات روی بالکن در چشمان نابینای یوسف قطره می‌ریزه. جواب آزمایش داد که یاسر میشه. چیز مهمی نیست. خودم باید پیام بده دکتر صحبت کنه. ببخشید من چشمامو نمی‌بینم حرفی که می‌تونم بزنم. میخوام مطمئن بشم. ascii ببینم کی رویا برای پاسخ به تلفن درون خونه میره. بله. سلام یوسف کاغذ های میزو که با خط بریل نوشته شده رو میخونه که ما را بادی وزیده و کاغذ توی هوا معلق میشن رویا, رویا یوسف سعی میکنن کاغذ رو بردارن رویا چند تا کاغذ از توی حوز برمیداره یهوان چیزی به زمین میافته رویا نگران نگاه میکنه. یوسف روی بالکن افتاده. روز بعد رویا دوان دوان وارد دانشگاه میشه. وارد راهرو میشه. راهروی دیگه. دانشجو از کلاس درس خارج میشه. رویا از دریچه در کلاس یوسفو نگاه میکنه. یوسف واکمنش رو توی کیف میذاره. میخواد دفترچه برداره که حلقهش که روی میز در کنار ساعتش به زمین میافته و در نهایت حلقه قلطان کنار میز متوقف میشه یوسف روی زمین در جستجوی حلقه دست میکشه ناگهان دست رویا با حلقه در انگشت حلقه یوسف و سر راهش قرار میده یوسف خوشحال حلقه رو بر میداره رویا اما هنوز پشت در کلاسه و یوسف رو از دریچه نگاه میکنه که اومدی؟ بازم نگران شدی؟ یوسف در بیمارستان روی تخت خوابیده رویا در کنارش اونو نگاه میکنه صدای ذهنی یوسف میخوام یه چند کلمه با تو حرف بزنم من یادت میاد یا حسابی فراموشم کردی منم هم یوسف همون که تماشای زیوائی های دنیا از اون دریق کردی و هیچ شکایتی نکردم به جای نور و روشنی در تاریکی و ظلمت فرو رفتم و هیچ اعتراضی نکردم به این بهشت کشتک خناهت کرده بودم و لذت می بردم آیا این همه سال رنج سختی کافی نبود در ادامه تصویر سیاه میشه یوسفو توی خونه میبینیم بینیم که درد دل های خودش با خط بریل می نویسه و بعد اونو میخونه نمیدونم به این سفری که میرم به آغوش خونو بادم بر می گردم یا نه نمیدونم این بیماری محلک منو به زانو و در یا نه نمیتوننم شکایت ده. اما التماس میکنم کمی از مهربونی تو نشونم بده فرصت این رو از من نگیر کاغذ و تا میکنه و در بین صفحات مصنوی معنوی میذاره کتاب رو در جلد چرمی خودش قرار میده روز فرودگاه عزیز جون سنجاق دعای وصل شده به لباسش رو باز میکنه و دعا رو توی جیب کت یوسف میذاره این دو هاست مادر برام دو ها خدا پشت و پناهی باشی رویا توی جیب کت یوسف گل میذاره دایه یوسف میاد رویا من میگرام نمیدش خب به تو تیجه وقت خدا fastapi نگران هیچی چی نباش همه چی رو وسط ردیف کرد پاریس هم که رسید يا آقای کاشانی اونجا منتظرته همه چی رو بهش گفتم برو خدا خوش و پناه بشی دیشم بابت همه چیز ازت من خب بابا برین دیگه دیر میشه همه با هم به طرف گیت پرواز حرکت میکنن تاریکی هواپیما در فرودگاه شارل دوبل پاریس فرود میاد یوسف به اتفاق خانمی بلند قد که اونو کمک میکنه در راهروی فرودگاه در حرکت یوسف کمی معذبه بعد از کمی به مردی میرسن و زن یوسفو تحویل میدن. یوسفو کاشانی از فرودگاه خارج میشن و بعد سوار بر ماشین در شهر به طرف محل اقامت یوسف میرن. خیلی خوشحالم که شما را از می بینم. <تصفح> <تصفح> امیدوارم پرواز خستتون نکرده باشه. نه خسته نیستم. من مسافرت هوایی رو اصلی دوست ندارم. خیلی کسی کننده است. خب برای های پزشکی شما خیلی سریش خوبه. محل اقامتتون تو این چند روز یه پانسیون نزدیک بیمارستان. جای خیلی دلچیه. مطمئنم خوشتون ایرانی ایرانیه یزدی مونده برای معالجه میان شما خیلی زحمت کشیدید. نمی چطوری بعد از شما کنم. خواهش می کنم دایی آقا محمود از دوستای قدیمی منه. اون بگردن من خیلی حس داره. برای من مثل یه برادر میمونم وقتی صفحا پیش اینجا دانشجو بودم و هیچ رو نداشتم محمود خیلی بهم کمک کرد من مدیون اون هستم به پانسیون میرسن که جای خوش آب و هوا با درختان سرسبزه پیاده میشن و به داخل پانسیون میرن پاشانی پنجره اتاق یوسفو باز میکنه شب بهتر پنجره آره هوا خیلی سرد میشه من طبقه بالا هستم اگه کاری داشتی با شماره اینو تماس بگیرید. الان کاری نداری؟ نه ممنون خداحافظ خداحافظ یوسف تنهاست تخت و لمس میکنه و میشینه روز بعد. یوسف دست کاشانی را گرفته. اونها وارد بیمارستان میشن. یوسف عصای سفید دستشه وارد اتاق دکتر فرانسوی میشه کاشانی با دکتر خوشو بشی میکنه و با هم صحبت میکنن و یوسف در طول مدت مکالمه کنجکاوه فقط نگاه میکنه. آقای کاشانی شما از مریضی آقای موسوی چقدر اطلاع دارین تا حدودی نمیتونم از شما پنهان کنم که حال آقای موسوی خیلی بده آزمایش هایی که در تهران انجام داده نشون میده که نه. یه تمور سرطانی زیر چشم راستش قرار داره که به نظر میاد میتونه خیلی بدخین باشه خیلی خطرناکه؟ بله حتما اگر این تومور متاستاز چشمو پر باید چشمو تخلیه کرد ولی اول به نظر من باید یه بیوپسی انجام بدیم و قبل از این به آزمایش های بیشتری احتیاج داریم تا بهتر بفهمیم که چی کار کنیم یوسف عینک بر چشم وارد دستگاه سی تی اسکن میشه تصویر جمجمه روی مانیتور کامپیوتر یوسف در دستگاه صدای مری یوسف در پانسیون با همون واکمند صدای مهریه گوش میکنه. گل هایی که رویا بهش داده توی یک لیوان آب. بابا یوسف مامان ترس زدیم که زود بیای. یه شهرم برای دلام میخونم. در ی رنگ. نوار میپیچه. ضبط خاموش میکنه و نوار رو میگردم. لبخند میزنه. باز هم می پیچه یوسف نگران نوارو در میاره نوار گیر کرده یوسف توی پارک نشسته نوار پیچیده و واکمن در دستشه سعی میکنه نوار گیر کرده رو در میاره اما نمیشه مردی نزدیک میشه و بعد روی نیمکت میشینه سلام هم شعره. ببخشید شما من مرتزه هستم شما چی کار کی شده خراب شده داشت میخوند یه دفعه جم کرد بیا گرده بخور، بخورید من میرم برید من درست کنم بیا یک گرده بخور ممنون من این امروز شما را دیدم اومده من چند روزی اینجا برای مداوا اومدم این بار سه اومم میام اینجا مواظب باشید طاره نشه میگردم نه کی چه گیر شده الان درستش میکنه شما بخور بخور چه بخور اینا من داره قدرت داره برید بخور درست نما نکر لاستشش خراب شده ها درستش میکنم. فکر میکنه. فکر میکنی این نوار درست میشه نیگران نباش درست میشه آدم اینجا چیزی که زیاد میاره وقته سر فرصت درستش میکنه. شما تو دانشگاه برای درس دادن از نوار خیلی استفاده میکنه نه؟ آره ولی شما از کجا میدینی من تو دانشگاه درس میدم خوشکم صدای پرنبران اشنبیه دارن بیرن تو تنگل پشت این پانسیون یه جنگل پر از پرنه من هر روز میرم اونجا اگر دوست داشته باشه میتونیم این بوز با هم بره اینم از نوار بده من اینا رو درست میکنم میرم بره. بیا بره یوسف و مرد در جنگل راه میره نگفتی مشکل شما چیه چند ترچش ناگابلی چی یادگار زمان زنجی منده تو سرم روی بینایم تحصیل گذاشت عذیبی ها این همه درخت توی این جنگله ولی یه درخت گردو نداری درخت مجنون چیه؟ مجنون چی میوه نداره؟ نه. هم برای من خیلی شانس میاره، هم برام خیلی خاطره داره. چه تو شانس میاره؟ یادم اولین باری که وارد مدرسه نوینایی شدم به هر کدوم از ما یه نهال دادن که باید خودمون ازش نگهداری می‌کردیم. نهال من یه مجنون بود. من و مجنون که قد هم بودیم با هم بزرگ شدیم. ولی کم کمون خیلی از من بزرگتر شد. آخرین این رایه در بزرگ شاید اونزا درخت مزنون هم باشه؟ میروم اونجا یه اشتن میگیریم <تصفيق> روزی دیگر چشم راست یوسف بسته شده و پرستاری با ویلچر اونا حرکت میده وارد اتاقی میشه پنجره اتاق بازه و صدای خوش پرندگان شنیده میشه دکتر در اتاقش با آقای کاشانی صحبت میکنه خبر خیلی خوبی برای شما دارم نتیجه این بیوپسی نشون میده که این تمر خوشخیمه و هیچ خطری نداره عجیبه ولی موضوع دیگه هم هست شما میدونید که آقای موسوی در سن 8 سالگی نابینا شده بله بله. و بر اثر آتشبازی بازی های چشماش میسوزه و شبکیه چشم جوری از بین میره من مطمئن بودم که اون برای همیشه نابینا شده بله، ولی ما متوجه شدیم که شبکیه های هر دو چشم به نور حساسیت نشون میدن درسته که این جواب فیلن ضعیفه ولی کافیه که ما امیدوار باشیم امید؟ امید به چی؟ که آقای مرزوی بتونه تا حدودی بینائیشو به دست بیاده چطور میشه؟ مگه ممکنه؟ منم خیلی تعجب کردم پس من باید زود به خانوادهش خبر بدم هنوز مطمئن نیستم به آزمایش دیگه احتیاج داریم قبل از اینکه پیوند قرنیه بزنیم حیات سرسبز بیمارستان و یوسف در تنهایی با یک چشم بسته فکر میکنه و مینویسه میگم که اشتباه کردم اشتباه بزرگمی بود که تو رو خوب نشناختم حالا میفهمم که اسمم از دفتر مهربونیت خط نزدی فراموشم نکردی با منی و مواظب من اما این کاش یاد کامل بشه حالا که دستم رو گرفتی و تو میگونه را آوردی خواهش میکنم خوب دمو بشت کن ممنیت میدار کن من قدر روشهت بیشتر از دیگه رو میدونم اگه از داری که بیرون بیام تو پایانه را با تو هم بود مرتزا همون مرد آذری برای ایادت یوسف اومده از دریچه در که تدایی کننده کلاس درس دانشگاه نگاه میکنه و وارد میشه یوسف خوابه پلاستیک گردوی که دست مرتزاست میفته و یوسف بیدار میشه کیه؟ آقا مرتزا شما این؟ نه آقلا نکنه مارا میبینه <تصفح> این عطف خوشتو فقط میتونه مالا آقا مرتزا باشه خبرهای خوب لیدم خیلی خوشحال شده حالا میفهمم که این درخت مزدون برای شما چقدر شانس میاره کی به گفت دستت در نکنه بارا دستگاه میرفتی بیا بالا بشین سر در کنی گلده ها رو جمع کنم میام بالا مرتزا روی تخت کناره یوسف میشه خب از خودت بگو. چه خبر امن کردی ماده یه دی دپورت شده این ترچش لع اینجا جا خوش کرده بیرون نمیاد. دکترم گفتن اگر عمل بکنن من کاملا کور میشم. منم نمیخوام کور بشم. چمچم کم کور بشم بهتر از این چه کور بشم. چه چه شایطور عمل میکنن؟ چند روز دیگه. خب هیجان داره نه؟ نمیدونم. هم هیجان هم ترس. از اینکه نبینی شاید از اینکه ببینم. من سی هشت ساله که توی دنیای دیگه زندگی کردم. نمیدونم چی میشه. بیا این فوسفور داره برای نشد خیلی خوبه. بخور. دستت درد نکنه. یوسف گردو میخوره ا ا داش یادم میاد. من نوار تو رو درست کردم. این نواره خیلی ممنون. اینم اضافه خوش. بگی. مرتضی تک نوارهای پاره شده رو به یوسف کار کارمندگی اینجا تمام شده. باید برگردم. کجا؟ یوسف میخاره. <تصال> چند روز بعد یوسف <ملاس> روی تخت از اتاق عمل میانید آقای کاشانی از پرستار حال اون رو میپرسه و پرسال میگه حالش خوبه به استراحت نیاز داره یوسف توی اتاقی با کفی شترنجی با احتیاط راه میره قطرات باران در حوز بیمارستان یوسف به کمک پرستاری چتر بر سر قدم میزنه حالا شبه یوسف روی تخت نشسته و با دو چشم بسته با خط بریل در تنهایی می مردد قلم بریل رو زمین میندازه و دست بر چشماش میذاره <تصفيق> چست به روی باندها رو باز میکنه میخواد اونا رو برداره ناگهان گوی نوری به چشمش میخوره ترسیده باندها رو رها میکنه سعی میکنه از زیر دستاش رو ببینه صدای دو نفر که فرانسوی صحبت میکنن توجهش رو جلب میکنه از روی تخت با احتیاط بلند میشه و نزدیک پنجره میاد. در کنار پنجره آرام میشینه مورچهای ای رو میبینه که بر دهان راه میره غذاش میفته اونو برمی و دوباره حرکت میکنه و یوسف که کمی محو اونو میبینه در تاریکی راهرو و چراغ قرمز چشمکزن زن سقف از اتاقش بیرون میاد به سختی و با احتیاط در راهرو راه, راه میره چشماشو باز کرده به راهروی خالی میرسه قطر اشکی به همراه خونابه از چشماش سرازیر میشه خوشحال و شاد همچون کودکان با لذت در راه رو راه میره و بالا و پایین میپره مسیر رفتر رو بر میگرده باز هم شادمانه توی راه رو راه میره میگرده بازم ای مکس میکنه تصویری مهو از خودشو میبینه که دستشو بالا میاره یوسف سر و صورت خودشو لمس میکنه باورش نمیشه در همون حالی که خودشو توی شیشه میبینه دو پرستار دوان دوان و نگران به طرف یوسف میدون و اونو ملامت میکنن که چرا این کارا کرده قروب پاریس و بعد شب یوسف در اتومبیل کنار آقای کاشانی نشسته چشماش میبینه و اینکی به چشم داره یوسف به خیابان و چراغ‌های رنگی نگاه میکنه آبی، سبز، زرد، نارنجی، قرمز و باز آبی، قرمز، قرمز، قرمز تصویر قرمز میشه یوسف توی هواپیما نشسته هواپیما در فرودگاه ایران فرود میاد در دالان مخصوص مردی یوسفو هدایت میکنه یوسف هنوز با احتیاط راه میره گلهایی روی زمین ریخته میشه و یوسف آرام آرام به سمت جمعیتی که برای استقبال از اون به فرودگاه اومدن حرکت میکنه همه دست کن میدن و گل پرت میکنن. یوسف خوشحاله در جمعیت پشت شیشه به دنبال شخص خاصی می‌گردد. نیست زنی با لبخند اونو نگاه میکنه و بغز کرده مثل اینکه که بیشتر دانشجواش هستن چهرههایی رو میبینه که نمی‌شناسه. مردی نابینا اما نمی‌شناسه. رویا رو میبینه اما نمی‌شناسه. دختری جوان رو میبینه لبخانی میکنه و میفهمه که میگه سلام یوسف سلام اما نمیشناسه دختر دوربین عکاسی دستشه یوسف مادرشو میبینه که بغض کرده و نگاه میکنه اما نمیشناسه از چهره اون رد میشه لحظهای درنگ برمیگرده و بهش نگاه میکنه بله اونو شناخته با مهر به هم نگاه میکنند یوسف دعا رو از جیبش در میاره و به مادر نشون میده عزیز جون لبخند رضایت بر لب تعیید میکنه یوسف میخواد مادرش رو صدا کنه اما توانایی حرف زدن نداره عزیز جون دختر جوان رو نشون میده و پری دختر دایش رو معرفی میکنه. یوسف نگاه میکنه. مادر کنار رویا میره و اونو هم معرفی میکنه. یوسف با لبخند و چشم در چشم اونو نگاه میکنه. رویا سر مریم رو میبوسه. یوسف حدث میزنه که دختر بچه همراه رویا مریمه. درسته؟ مریم براش دست تکون میده و یوسف شادمان به اونها نگاه میکنه دایی، مادر، رویا، مریم، پری و یوسف در اتومبیل دایی نشستن این که میگن آدم از فردای خودش خبر نداره اینها. وقتی فکر میکنم چه چیزهایی هست که باید ببینیم اصلا کلم سود بکشه دایی جون اصلا باورم نمیشه انگار دارم و خواب ببینم باور کردنی میستنی حقیقت داره اول باری که خبر سلامتی تو رو پورانجوم امداد پشت یه چرا قرمز بودم از خوشحالی شیشارکشم پایی سرم آوردم بیرون شروع کردم به جیخ زدن آهای ایوهنس یوسف یوسف میبینه چشماش میبینه یوسف منه! ملکی که دورو برمون بودن گفتن یارو پاک دیگونه شاده سلام کلن اون روز همه محله ما رو ریخته بودی به من فکر کنم آقا محمود همه ی تهران رو خبردار کرده فقط آگهی روزنامه نداده دایی جو یاده میاد با هم رفتم افشار دا آ بر که باید به حدشون بدم همونجا مریم جون به من نگاه کن میخوام حظت عکس بگیرم منو نگاه با سکت آها مریم به صورت پدرش دست میکشه یوسف میخنده و رویا اومده عکس دار من همه گذشته‌ها تو من با عکس هم فیلم بگیرم تاریخ خانم یکس از ما نگرفت یای باش باش مریم جون من نگاه کن ماهی شماهیشو الهی قربونت برام مادر حالا عکاس از همه کرد هم؟ همیشه با واسه فیلم چند. چقدر حرف میزنی سلام. به من نگاه کن من بچه شار که باها رو اونها با ماشین وارد باقه دایی میشن دو تا گوسفند آماده قربانی رو به زمین میندازن كل خانواده با اسفند و دووین در دست به استقبال اونها کنار اتومبیل میان. همه از ماشین پیاده میشه یوسف در بین نگاههای خوشحال همه راه افتاد. سلام بایست. خیلی خوشحال خیلی. خوش خیلی خوش هم سلام رو به طرف امارات باغ راهنمایی می‌کنه و همه میره. شب شده بارون میاد و مهمون رفتن اهل خانواده به طرف ماشین میرن دایی مریمو که خوابیده بغل کرده اونو توی ماشین میذاره. یوسف و مادر پشت سر همه از خونه بیرون یوسف رویا پشت رول نشسته و با یوسف به طرفه خونه خودشون راه میفتن به جای می رسه معلمونه چیزی نموده برسم الان کجای م اصلا باید یه تفتونی دویم چهلوتر میشه دیگرداری برای چی؟ رویگرد رویا ماشین رو متوقف میکنه یوسف بیاده میشه آهسته در تاریکی راه میره رویا نگران با ماشین پشت سرش را میفته. رویا چراغ میزنه و نور چشم یوسف و اذیت میکنه. رویا در ماشین رو باز میکنه اشتباه رفتی کوچه سمت چپ. رویا در میبند یوسف به کوچه که رویا گفته میره ماشین توی کوچه نمیاد یوسف نرده های خونه رو لمس میکنه در خونه رو رویا بچه به بقل دوان دوان وارد خونه میشه چراغ رو روشن میکنه به یوسف که به طرف بالکون خونه میره نگاه میکنه در و میبنده یوسف روی پرده حسیری دست میکشه سراغ ماشین تایپ میره خیره به رویا که روی کاناپه نشسته نگاه میکنه چرا اینجوری نگام میکنی؟ نمیخوایی لباس با سو کنی؟ چرا؟ که کمی رویا پیش مریم میره داود بلند میشه و میخواد به طرف اونا بلیم نگران فقط نگاه میکنه رویا لباساشو عوض کرده و در آینه روسری خودشو مرتب میکنه حالا به طرف یوسف که توی حاله میره یوسف اما روی کاناپه خوابیده رویا روی کاناپه میشینه کت یوسفو برمیده اینکشو هم. و با محبت به یوسف نگاه میکنه روزی برفی یوسف در حیات خونه راه میره دستش و زیر برف میگیره برف روی, روی یک شاخی درخت و لمس میکنه در جنگلی برف گرفته راه میره که مریم و یا صداش میکنن و بهش نزدیک میشن شروع به برف بازی میکنه به سمت همدیگه گلوله های برف پرت میکنن یه گلوله برف توی عینک یوسف گلوله به طرف مریم و رویا گلوله به گوش مریم میخواه هر سه در برف ها راه مدادی رو به پدرش نشون میده این این زرد آفرین یه مداد دیگه آ ای گفت این این سفید آفرین این یوسف مدادو میگیره این طریق میخوره یکی از مایه جدید نیه این طریق میخورم این مایه خوشگله مریم بگم اگه تو الان بگیرم الان مریم در کوچه پس کوچه ها مریم میدوه و یوسف اونو دنبال میکنه رویا پشت سرشونه اونا به در خونه عزیزجون میرسن یوسف با حسی نستالژیک آروم به در خونه نزدیک میشه پردر رو کنار میزنه و وارد خونه میشه وسایل قدیمی خونه رو میبینه دو عکس قدیمی میبینه که یکی پدر مرحومشه و دیگری که احتمالاً برادر شهیدشه یوسف عشق میریزه و به عکس ها دست میکشه بر وسایل دیگه خونه هم دست میکشه به ظرف نخوچی کشمش عزیز جون میرسه قدیمی روشنش میکنه عزیز جون دم در به یوسف نگاه میکنه در حیات خونه بسات به باست دیگ و دیگ بر یکی کپسول گاز میبره یکی سبزی میاره یکی برنج زعفرونی رو مخلوط میکنه یوسف در بخار دیگ برنج ایستاده و کشیدن برنج رو نظاره میکنه روی برنجا خورش ریخته میشه سینی غذا آماده بردنه یکی یکی میبره دسم تموم شده و همه رفتن زندهی یوسف رو صدا میکنه این پری کشت منه گفت من که روم نمیشه این پایان نامر خودم بدم به آقا یوسف داد به من که من بدم به شما بفرمایی طفلک چند وقت خیلی منتظره فقط خواهش کرد که ای فرصت کردین یه نگاهش به میدونیم که براش خیلی مهم به پریجون بگو قول میدم این دفعه خودم برای یوسف بخونم جوابش هم سریع بگیرم گروه بوند با یوسف الفبای فارسی رو با حروف خط بریل تطبیق میده و تایپ میکنه با شنیدن صدای مریم از جا بلند میشه و سمت پنجره میره پری رو در حال صحبت با رویا می‌بینه. پری چیزی رو به رویا میده و یوسف نظاره‌گره. پری بود، عکس‌ها رو آورده. ببینمم خودم ببینم. عجله داشت. هر گفتم بیا تو گفت تمرین موسیقی داره. عکس روز ورود یوسف به ایران رو می‌بینه. ورانجونی آره خیلی اینجا <تصفيق> داره. آره, آره. در یکی از عکس‌ها یوسف باید. کنار پری ایستاده دلش هم؟ کمی می‌ترسه یوسف در خیابان از جلوی مغازه تلویزیون فروشی رد میشه. راز بغا نشون میده. تلویزیون دیگه کودکان بی سرپناه نشون میده. تلویزیون دیگه که به دوربین مدار بسته وصله خودشونشون نشون میده. یوسف در خیابان از مردی آدرسی و میپرسه و مرد راهنماییش میکنه. یوسف وارد ساختمانی به نام بریلیان میشه. اونجا در اتاقی منتظر دایی نشسته خب آیی کازمی هنگی شای برسی این رو سفارش بدن همین خوبه برای من سفارش بده. شما من بیتو خیلی ممنون قرارون شما برم دایی بری خب خانم آقای اون فعلا با عزتون آقای امیری من میام کارگاه و میام ادجون خیلی خوشحالم کردید اومدیم با هم بریم کارگاه ماشین‌بدن. یه چای دبشم با هم می‌خوریم. دستگاه‌های تلاسازی هم که داریم همه میدم. بهتون می‌دیدم. بفرمایید. مطمئنم خوشایند. دایی و یوسف از اتاق خارج شده وارد آسانسور میشن. کارگاه تلاسازی دایی. دایی با یکی از کارگرها صحبت میکنه و یوسف ساخت و ساز کارگرها رو نظاره کرد. طلای مذاب در قالب ریخته میشه. جرقه های بر لباس یوسف میپره و میترسه یوسف در قطار مترو نشسته و مردم نگاه نگاه میکنه پیرمردی روزنامه میخونه پسری با هدفون آهنگ گوش میکنه و در عالم خودشه شخصی در جیب دیگری دست میکنه برای دزدی و یوسف میبینه صاحب کیف حواسش نیست دزد لحظه متوجه یوسف میشه اما با پر روی کیف پول مردم میزنه و میخنده چشمکی میزنه و بین جمعیت گم میشه و یوسف فقط نگاه میکنه شب شده و یوسف روی بالکن نشسته رویا پیش یوسف میاد چندچ قمه کاشتم برای بچه های مجتمع خیلی خوشحال میشه قرار تا هر هرکی قلمش از همه بهتر باشه جاییزه بگیره چطوره خیلی خوبه امروز دوباره از دانشگاه تماس گرفتم ام با... می بالاخره برای ترم جدید می هنوز تصمیم نگرفتم. اصلا شاد کارم ما عوض کنم. مثلا چی کاری؟ دونم. هر کاری بیشتر دوست داری بیا واشلام. من جو به تجربياتت احتیاج دارن. همین فردا با من بیا. یوسف ناراحت وارد خونه میشه. روز بعد در کوچه رویا نامه در دست به در خونه میرسه و با یوسف برخورد میکنه یوسف که گلدونایی در دست داره کم محلی میکنه و میره رویا در میبنده یوسف و رویا در ماشین چقدر خوب شد تصمیمت عوض شد و میایی مجتمع ها و بچه ها وقتی به فهمنگ اومدی خیلی خوشحال میشن من فکر میکنم تو مجتمع خیلی به تو احتیاج دارن تجربایی تو خیلی بیتونه به اونا کمک کنه به خصوص به معلم ها همینطور به بچه ها وارد محبته مجتمع میشه رویا پیاده میشه و در صندوق عقب رو باز میکن یوسف هم از ماشین پیاده میشه بچه رو میبینه که کتابی در دست داره و به سمت اون میاد آقا. بیاری. بچه ها به کمک رویا گلدونا رو داخل مجتمع میبرند و یوسف مبهوت نگاه میکنه <APIAN> <SENAC2> یوسف <تقیم> وارد راه رو میشه بچهها در کلاس نشستن و معلم زن نابینا به اونها درس میده کلاسی دیگه که مردی تدریس میکنه یوسف در کلاس رو باز میکنه بچه ها همه نابینا هستند و یوسف اونا رو میبینه کیونجا؟ یوسف ناراحت از اونجا دور شده و در راه رو میدونه رویا مشغول باغبانه خاکها رو زیر رو می‌کنه. باشن خاکو صاف میکن. بعض میپاشه به کمک مریم روی اونها پلاستیک میکشه و با تناب به پایه ای می بنده.سی که سردش نمیشه. نمیشه. تلفن زنگ میزنه. کسی جواب نمیدی. میره روی پیغام گیر. یوسف تو ایوز... اما توی خونه هست یوسف با شنیدن صدای پری دلش هری میریزه یوسف میخواد گوشی رو برداره اما نه بر نمیداره می‌خواد صدای پری رو دوباره بشنوه. ولی خیلی دوست داشتم ببینم اولوسف چه قرار اسونه اما خنده. نظرش چیه؟ راستش چندبار خواستم بیام باش ایشون کنم اما نمی‌دونم چه یه جوری حیا کشیدا. یوسف مونقله به رؤیا و مریم در حیات نگاه می‌کنه. یوسف پایان نامه پری رو میخونه حالا یوسف خسته خابیده رویا عینک از چشمش برمیداره و ملافه روش میکشه روز بعد رویا و مریم پلاستیک روی باخچر رو کنار می‌زنند. گلها رشد کردند و برگا سبز سبزند. یوسف پشت دستگاه تایپه که مریم در میزن مریم دست میده و میری رویا به گلهای حیات آب میده و مریم با گلها بازی میکنه مدتی میگذره بادها وزیدن گرفته در اتاق یوسف بازه چایی ریخته شده اما یوسف نخورده باد گلهای مریم رو با خودش میبره شب شده در اتاق یوسف هنوز بازه بادی میوزه و دوتا از رو به زمین میندازه رویا کاغذارو جمع جور میکنه میخواد اونا رو روی میز یوسف بذاره که عکسش رو با پری میبینه رویا دلگیر به یوسف که روی بالکنه نگاه میکنه با همون کاغذ روی عکس رو روز بعد رویا در حیاته و هنوز دلگیر به گلها آب میده به یوسف که پشت میزش نشسته و کتابی به خط بریل مطالعه میکنه نگاه میکنه یوسف در خود در خیابان از جلوی چندین مغازه بی رد میشه به مغازه مانتو فروشی میرسه میسته به مانتوها و رو سریع نگاه میکنه همون شب ساعت ده و نه دقیقه رویا پشت میز یوسف تنها نشسته و منتظر اونه دیر کرده نگران شده و البته کمی هم ناراحت یوسف در پارک از پله ها بالا میره روز بعد یوسف وارد حیات خونه میشه کلیدش رو توی جیبش میذاره و از کنار باغچه رد میشه به حوض میرسه شیرو باز میکنه و آبی به صورتش میزنه رویا نگران و کنجکاو و از پله های بالکون پایین میاد و به یوسف نزدیک میشه کجا بودی؟ من که مردم از ندارم. نگران نگران برای چی؟ نباید شدن تو تا کهی میخوای نقش مادر رو برام وازی کنی؟ من دیگه بزرگ شدم چلو پنج سالمه اینو میگه و میره و رویا دل شکسته فقط نگاه میکنه یوسف پشت میز کارش رو نگاه میکنه رویا براش چای میاره بی اتنا روی میز میذاره. میخواد بره که رویا من من مذیرت میخوام اما رویا بی هیچ حرفی میره یوسف در تاکسی به آموزشگاه پری میرسه پیاده میشه وارد ساختمون میشه با نگهبان صحبت میکنه سلام سلام آنه ببخشید من میخواستم خانم پری آزرنوش رو ببینم نمیشه الان تمنی دارن کهی تمام میشه یه ساعت دیگه خیلی از در بیرون میره و پشت شیشه به انتظار میسته ساعتی گذشته و یوسف پشت درخت در انتظار پریه هنر رو از ساختمون یکی یکی بیرون میره یوسف پری رو میبینه خوشحال میخواد نزدیک بشه که میبینه با پسری دور میشه نراحت شده. اونا سوار پژوی قرمز رنگی میشن و پسر بر پشت رون اونها رفتن یوسف با گل قرمزی که لای پوشه گذاشته مات و مبهوت پژوی قرمز و نزاره کرد بارون شدید شده از پوشه و گل قرمز به شدت آب میچکه. یوسف لنگان لنگان در خیابان در مسیری که اونها رفتن قدم بر می و رویا رو میبینیم که در ماشین نشسته و تمام اعمال یوسف رو دیده برف بکن آرام آرام در حرکت ماشین روشن میکنه و همینطور که یوسف رو در آینه میبینه از اونجا دور میشه رویا و مریم به خونه عزیز جون اومدن رویا با ساکی در دست پردر رو کنار میزنه و وارد میشه از پله ها میاد و آروم آروم با چشمانی نمناک به عزیز جون میرسه عزیز جون که حال و روز رویا رو میبینه بلند میشه و بهش نزدیک میشه چیزی شده؟ نه عزیز جون چیزی نشده من پریم میخواییم بریم کاشا تنهایی آره کاشان اتفاقی افتاده؟ نه نگران نشه اما من حتما ماید چی شده؟ عزیزجون جون در آغوش میگیره و گریه میکنه شب شده. یوسف وارد خونه خودشون میشه. توی اتاق عزیز جون رو میبینه که منتظرشه. وارد اتاق میشه و آرام آرام به عزیز جون که جلوی کتابخونه ایستاده میرسه. سلام عزیزیم بچه ها نیستم من اومدم از تو بپرسم یعنی چی؟ چی شده؟ بچه ها کجا اگه برای تو مهمه؟ این چه سوالی عزیزیم؟ خب معلومه؟ من فکر نمیکنم. اگه برای تو مهم بود اونا الان اینجا بودن نه کاشان؟ پس چرا رویو به من چیزی نگفت باید می من که نمیتونم چی میگی یوسف تو با زندگی چیکار کردی؟ کدوم زندگی؟ کسی چه میدونه من تو این سالا با چه حسرت این زندگی نکبتی رو تحمل کردم؟ همه بهم ترهم کردن؟ شما زن اطراف یا نه؟ دیگه که به هیچ کسی اتیاج ندارم دلم به خودم باشم همو زندگی که حقمه داشته باشم من بهتری سالای عمرم از دست دادم یه نگاه دورت رو من بنداز ببین با چی دارم این از زندگی یه موش آشخال چهار تا درختی خونه که فکرم کردم قطعی از بهشته من این بهش به هم ها نوارها رو به هم می‌ریزه می می کتابها، جزوه‌ها نوارها همه رو از توی خونه بیرون می‌ریزه عزیز جون رفته عزیز عزیز از پنجره نگاه میکنه و میبینه که عزیز جون چادر بر سر از در خونه بیرون میره و یوسف فقط نگاه میکنه صبح شده یوسف که روی کاناپه خوابیده بیدار میشه وسایل به همریخته خونه رو میبینه روی صندلی بغچه ای توجهش رو جلب میکنه به طرفش میره بخچه گلگلی رو باز میکنه کنه قابلمه درش رو ور می داره قذاست به همراه گوجه و سبزی و ترپچه یوسف <تصفح> در قطار مترو ایستاده دختر جوان و زیبای رو می بینه که با زنی صحبت میکنه یوسف نگاه می دختر که متوجه نگاه یوسف شده با ترفندی حلقه نامزدیشو به اون نشون میده یوسف میبینه و سر به زیر می یوسف در خونه عزیز جونه در میزنه و بعد زن همسایه که با چادر از یوسف رو گرفته با اون هم کلام میشه. آقا یوسف خونه نیستن. سلام. سلام علیکم. کجان؟ مگر شما خبر نداری؟ از چی؟ والله دیشب حال مادرتون به هم خود ترکه خانوم و همسایه‌ها کمک کردن ایشونو بردن بیمارستان. بیمارستان؟ کدوم بیمارستان؟ بزن از دخترم بپرسن بهتون بگم. زن سر به داخل میبره. دیمارستان. عزیز جون که دستگاه مختلف بهش وصله روی تخت به آرامی خوفته یوسف و دایی با چشمان عشق بار از پشت شیشه اونو نظاره میکنه یوسف و دایی بیمارستانو ترک میکنن. هر دو در اتومبیل. به نظر من تو باید یه تغییر اساسی تو زندگیت بدی. تو بالاخره میخوای چیکار کنی؟ همینجوری آتول باطال که نمیشه. تو باید به فکر زن و بچت باشی، به فکر اون مادر مریضت باشی. آخه اینجوری که نمیشه. من هر کمکی که بخوای حاضرام بکنم. دلت بخواد شغل جدیدی رو شروع کنی یا میخوای جای پول سرمایه‌گذاری کنی. من هر چی پول بخوای در اختیارت میذارم. اصلا چرا نمیشخ چی از تو بهده؟ اونجا خیلی کار داریم که تو میتونی انجام بیم آان چند دانششته رفته گوشه خونه نشستی کار و زندگی و دانشگاهم که تعطیلش کردی رفته به نظر من تو باید از این وقت خیلی استفاده یه زندگی جدیدی به تو بده، بابا استفاده کن دیگه و یوسف فقط توجهش به ماکنه نیمتنیه که پشت موتوری قرار گرفته یوسف به خونه خودشون میرسه میخواد داخل بره اما نمیره در کنار در لحظه میشینه یوسف کتابها و جزوه ها رو با عصبانیت از اتاق به بیرون پرت میکنه که بعضی ها توی حوض میفته بعضی ها روی زمین توی اتاق میره و باز هم کتاب و جزوه توی آب کتابی به شیشه میخوره و میشکنه. به این کارش ادامه میده تا اینکه خسته پای نرده بالکن میافته حالا یوسف مونده و یه عالمه کاغذ و برگه کف حیات یوسف روی پله به اونها نگاه میکنه مصنوی معنوی توی جلد چرمیش که حسابی خیز خورده زیر آب میره یوسف همه ی کاغذ های توی حیات و آتیش میزنه و به شعله های آتیش و کاغذ های سوزان نگاه میکنه کتاب با خط بریل کتاب های چاپی عکس های عروسیشو با رویا میبینه اون موقع نابینا بوده عکس ها رو هم توی آتیش میندازه عکسش با پری هم در آتیش در حال سوختنه عکس جوونیش عکس بچگیش و حالا کاغذ سوخته معلق در هوا رو تماشا میکنه کنه سوخته روی زمین و توی آب فرود میان باد اونها رو با خودش میبره فقط چند نامه سالم روی زمین مونده اونها رو بر میداره. دانشگاه شهید بهشتی از طرف مرتزا سلام آقا یوسف خیلی دلم برات تن شد دوست داشتم دوباره را ببینم تو از دیدن ها برام بگی منم از ندیدنه ها از وقتی که تمرین کردم نبینم خیلی سیزهای زده دیدم سیزهایی چه تکراری نیستم راستی یه جنگل پیدا کردم پر از درخت کردم دوست دارم یه روز ترا ببرم به تماشای اونجای یه شکم سید گردو بخوریم دوستارم بدونم تو چقدر تماشا کرده چشمات از تماشا پر شده یا نه چقدر سوال دارم ازت بفرسم اصلا وقت کرده به تماشای درخت مزنوم بریم دوستارم بدونم درخت مزنوم هنوز برات شانس میاره از سیدار که بهت گول داده بودم برات فرستادم که بدانه خیلی بیادت دوستی شما مرتزا نامه مرتزا رو میخونه و به سمت خونه میره یوسف به عکس خودش در کنار بید مجنون نگاه میکنه چشماش چشماش سیاهی میره و تصویر تاریک میشه یوسف دیگه نمیبینه دکتر چشمای یوسفو رو با چراغ قوه معاینه می‌کنه. چشم‌ها به نور حساسیتی نشون نمیدن. احتمالاً پیوند قرنیه باید پس زده باشه. دکتر امیدی هست؟ به نظر من ایشون باید چند روزی تحت نظر باشن و چند آزمایش رو چشم‌پزشک انجام یوسف سنام دستشون میکنه. آه. یوسف آروم میکنن دایی و یوسف در اتومبیل چطور دست پوران و پری رو بگیرم یه سری بریم کاشو رویا و مریم هم میاریم بلاخره چاشنی زندگی دیگه من به تو قول میدم همه چی درست میشه ولی تو نباید امید خودت از دست بدی با دکترام صحبت کردم میفرستم خارج کشور هر چندتن پول لازم باشا. خرج تا تو دوباره پیناییت به دست بیاری یوسف میدرزه عصبی در اتومبیلو باز میکنه و وسط خیابون پیاده میشه با چشمانی نابینا لا لای ماشین ها حرکت میکنه دایی سعی میکنه اونو کنترل کنه اما نمیشه دایی رو به زمین میکوبه و به راه بی هدفش ادامه میده دایی باز میگیرتش اما دوباره اونا به زمین میکوبه یوسف مرتب به ماشینهایی که توی ترافیک عظیم تهران هستن برخورد میکنه دایی با دستی دردمند به طرف اتومبیلش میره و یوسف همچنان لابلای انبوه اتومبیل بی هدف میره و به اونها میخوره خودش خودشو به گارد ریل وسط خیابون میرسونه از اون رد میشه تا کمی امنیت رو احساس کنه کورمال کورمال حرکت میکنه و ناگهان در جوی آبی میفته. خیس و کسیف شده. از جوی بیرون میاد و باز هم بی هدف در زیر درختان وسط خیابون حرکت میکنه. حالا با سر و روی کثیف خودشو به پیاده رو رسونده و از لابلای انبوه آدمها رد میشه و به اونها برخورد به دوتا دختر میخوره اما نمیبینی به مردی میخوره ولی نمیبینی به راه بی پایان و بی هدفش ادامه میده مردم که وضعیت اونو میبینن خودشونو کنار میکشن که یوسف به راهش ادامه میده یوسف با چوبی در دست در پیاده روی حرکت میکنه از جلوی یک ساعت فروشی با انبوهی از ساعت میگذره دیگه شب شده یوسف همچنان با چوبی که به دست گرفته در خیابون راه در راه به حساری توری برخورد میکنه حسار رو رد میکنه و وارد جایی میشه که آشغالای زیادی اونجا ریخته پاش به چیزی میخور و میافته بلند میشه و باز همراه به بشکی پر از آبی می‌خورد، باز هم برخور به حسار انگار در این حسار و انبوهی زباله و چیزهای به نخور زندانی شده با چوب به زمین میکوبه که راهی برای رفتن پیدا کنه باز هم برخورد به بساری گیج و مبهوت به دور خودش میچرخه راهی نیست گریان و آجز به زمین صبح شده یوسف زیر پلاستیکی خوابیده و قطرات آب بر روی پلاستیک میفته که اونو بیدار میکنه بلند شده و از پلاستیک بیرون میاد توی خونه خودشه و پلاستیکا همونیه که رویا روی گلهای باغچه کشیده بود خونه سوت و کوره یوسف آروم آروم خودشو به حوزه آب میرسونه کاغذهای سوخته و آشغالای های دیگه سطح آب و پوشوندن. انگشتی در آب میکنه و آب و لمس میکنه وارد آب حوز میشه و در کف حوز به دنبال چیزی میگرده جزوی رو بالا میاره نه این نیست کاغذی اون هم نیست عکس یادگاری مرتزا رو معلق در آب میبینیم به سمت دیگه حوز میره مصنبی معنوی رو پیدا میکنه خودشه از آب بیرون میاد روی زمین میشینه و جلد چرمی مثنوی رو باز میکنه کتاب رو در میاره کتاب رو باز میکنه حسابی خیس خورده ورق میزنه آب لابلای صفحاته به صفحات مصنبی دست میکشه کاغذش پاره میشه. بازم ورق میزنه. به کاغذی میرسه که روزی خودش نوشته بود و میان صفحات مثنوی گذاشته بود. نامه به خط بریله میخونه و گریه میکنه. با دستهای لرزان اونو میخونه. یباردیگررسخوا با غذایی در دهان روی کاغذ میاد طول نامه رو طی میکنه و از طرف دیگه خارج میشه عزیزان شنونده فیلم سینمایی بید مجنون رو با همدیگه شنیدیم امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشه تشکر میکنم از صدا بردار خوب برنامه جناب آقای علی حاجی نوروزی و, و تهیه کننده محترم فرشاد آزرنیا بنده هم که در خدمت شما عزیزان و گرامیان بودم بهرام سربری میشاد تا برنامه دیگه که فرصتی به ما دست بده تا در خدمتتون باشیم خدایار و رو نگهدارتون باشه